<مضوع> منم از صدقه سریه داداشم تنبیم میکرد آقا میگم تنبیم ازورم کتک نیستا جیرتونو برس میکرد آره آره حالا چرا همتونو رسول اینجای نگاه کن چقدر خوشگله توی خانواباده وقتی یه نفر خطا میکنه همه درگیر میشه سرچ میخوان خوام بگین که من براتون بزنم. از این می‌خاستم. از این می‌خاستم. از بعدش اون از این مودول براتون بزنم. So حال ما سوار رو تو به شد خ اومال توری رفی که نشه باش باش خدا. هست. سوری برگردم تو محراب برگردم باده کن بستر صدا و دفعا مرافقا بخوا دیویادم هست دیویادت نیست قرار شد سوری برگردی سر صدا بخواب محراب برگردم باده بان. و تو یک کلمه ایدی که حرف نزنی و بری من لازم داری حرف بزنیم من لازم دارم حرف بزنیم تو لازم داری حرف بزنیم من هم رفتن لازم داری من هم رفتن تو لازم دارم کجا برم وقتی دوست دارم کجا برم بیشه خاندادشت چاوش همیشه عثمان خانه خدا واسه هم میگه اتون داره زنمی زنم بمون بخاندادشتا راحت میشه درستش میکنم خلش میکنم با چه حلش با پیت بنزی یا؟ منشه خوش اومده هنیف زنمی برو نیستم نیستی نیستی خیلی خوب بزرم میدونی چند پیش که تو خوابیده بودی منیشه اما هنیف جون هنیف جون هنیف با تو خالیه پیست. قوی. میگم واسه با یه منیشه واسه خونمون اومد. میرم. ماش میرم، میرم، میرم، میرم. خرابون دست خونه رو بچ میرم. بابا. باقیه هستی که جوشه گرفته بود میخواست مهنگا للم کنه آتیش درست کنه تو برای تو کبام درست کنه تو که جوشه کبام دوست داری ماما دوستش داشتم دوستش داشتم دوسش داشتم دارم زنم رو ببینم بذار ازش بپرسم بعد ببین چوابوشم چوابوش نخیی افثانه اینجا دیگه میشه لازن اینجا سلام رو دوگر رو کفره اینجا جانه که بیشه از افتاد دو داری افسانه بکشی افثانه مردم شوهر دارن منم شوهر دارم والله به خدا سه روز اول بعد عقدمون آقا جلو رنوویل هم کرد و محتاب بویا مده بود رفت حالا آقا رفته بعد دو سال دو سال چیه؟ تو بگو سه سال، سه روز اول که حساب نیست بعد سه سال برگشته اونم با زور اومده دو. حالا، یه دونه هم از داده شما خود آقا یادش رفته که وقتی تیمون مورد پا اولو قرار گذاشت وسط که من بچه میخوام باور ندارم ای از من باشه باور دارم ایب از محتاب جونشه باور ندارم ای از محتاب جونشو نمیخوام بروش بیارم با قول و ذوق و شوق اومدی دنبالم من که نایمدم باشه قبل اینکه تو سرکوف بزنی خودم اعتراف میکنم من رو بایدام بهت پیشنات اززواج دادم جارم یکم منمون کردی و گفتی به عشق بچه باشه که گفتی به عشق من ها ای بیان من داره من رو همچین دومال عشق نگوده حالی گفتم مرد دارم از این به بعد سایه سر دارم از این به بعد آبر بانک دارم از این به بعد تیمور که رفت نمیرفتم من می‌رفتم والله من فکر کردی عاشقش بودم عاشق هستم عاشق همه چی البته که بیشتر از همه پول تا تیمور بود همه پولاش قایم شده بود وقتی هم که ریختم تو سردخونهاتون و میوی قاچاق در رو همه چیش مسادره شد افثانه موند این باقی که تو بهم به دادی تا دهنم بسته بمونه ولی من که درنم بسته نمیونه باستادم باستادم تا به وقتش وقتش هم الان و من و ست تا داداشو نوم خورم باز خوبی داداشو هم یکی بهت زدن دوت تاشونو که زدی اولی دماغش شکست دوانی دندش ترک خورده همین الان زنگ زدن از ارجانس موندین سرکومی که باز با انصاف زدتت بوجه دارن بمیرم واسه داداشم مظلومن به خدا چششون به دست آبتیشونه خب منی که میبینم چششون به دست منه تو هم که سه سال گذاشتی رفتی بر نگشتی خب چه نبعد هجرات و زنجیر کنم هان چه نبعد شلوخ بازی در بیانم و محتوه به جونت بندازم آخی قربونت برم بخور از زمناش آماده میشه. چا چه بی ادب، چا خوش. اسم به منو صدا نکن. فقط یه زن میتونه اسم منو صدا کنه. من تو، تو. دخالت نکن. پلیس دیگه از کی کن نه تو چه خیپتری نش تو زندگی من بودی؟ چه این مرغ و جوجه میبچت؟ نه من. من پسر بدوی‌ام، بدوی. معصوم بودی؟ نه، نه بودام. نبودم ولی قاچاخچی هم نبودم از کشاورزی که دستوش پینه وسته یک قرون نگرفتم بریزم هزار تو من تو بازار من معصوم نیستم چی گفتم من معصومم ولی تو یک کشاورز یه باغدار یه کارگر برای من مثال بیار چه چاوش حقشو ناحق کرده باشه من نه توان نه تیمور سر رفاقت سر رودربایسی سردخونه هم استفاده کرد گرفتم بردنش سر خلافش بود تو زندان مرد؟ تو سکس شدی نه من؟ که یتیم خوهرش فرستادی یتیم خونه بعدم تو زندان تو انداختی که من لش دادم من فروختمش الان هم تو میدین تو انداختی که من زنه چابوشم نیستم مگی هیچی نگست یک کلمه نمیگی گاز خاموش کن پیدا شدنه نبود هلان وقت پیدا شدنت نبود همون موقعش سه روز بعد اقتوت گفتم جور پاساش تو اون ماشین خطا کردم یا جداشیم تو اونشم هرچی از شکل میدم بد اینجورو به نامت کردم انقدر طولش دادی که بشینی رو همه ی رو ندارم اونتا همه ی دعا نداره من اجرا نیست محتابه دعا رو ندار من محتابه من چیو بد امزا کنم؟ کجا رو امزا کنم که سنگ و سیمون مال توشه محتاب مال من یعنی محتاب این قد میارزه محتاب قیمت نداره قیمت دار قیمت چنده سه دونگ از هر حجه دنیا دار مکافاته یه عمم سه دونگ کریم بوستان رو خواهم کردم انا سه دونگ از همه چیز رو به دو دستیدم به تو سیدون نه الان دیگه همش در قابل مرایی کم بزن ورتر تدگیش بر بیاد از هر کدوم پ تا حژه کچ و سیمون بده محط ببر همینو گفتی دیگه نه؟ شغال فرای سرزان اوچم؟ بده که بیرنگیه به درد نمیخورم تا به نامم نخورده قفل از حجرابن نمیداری Mul on si nägine mõk aga sa nem bot manam travosh du machot Dane, see see. on درسته جی عرض میکنم خیلی خوبی داریم دواشه بدن مگه داریم آقا برای نکن بیانتون دوری بیافت نداشت بگم ای یخ جال نگیرم اینجا اون پای چی گذاشته جوابم بده. جوابم الان رو تختیبی بیمارستان خوابیده مستقیم عبد بزن دا هم مستقیم میرم خوش جهیزیه منه بشین لیلا بشین بابام این کار کرد فقط برای اینکه تو توش آباش باز به هم نگاه کن گفتم بشین نه تا وقتی زبونه درست دار نکنه تا وقتی درست درست گام نکنی گفتی تمام گفتم باشه خیلی چیزا گفتم و گوش نداد من دوستت دارم میخوامت شوهرمی می تجهیم بشین لیلا بشین اگه گفتم تمام برای این بودش که همه حرمت و بابا شکستی بشین بشین بشین بشین Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! Tere! قرقت می کنم دوید مرده ساتو بپردو بپردو او ساتو بایدیگی بنام از سارتیم لیلا سارتیم خدا را نستیم خدا لیلا لیلا بدیم لیلا لیلا چه برای منو بخوایم بگیریم خواهر منو ازم گرفتیم از غرور اسکو دستم مدون بود و تو چیکارش کردی لعنتی لعنتی لعنتی لایلا یزی خبرینت دروب الهی अरे بالا چه شو رفته‌ باشه ساعت 40 داره برو <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> بزار ن جوری چند ها بزارید! باشی گفتی اسم شرک و ناسه از دست بدم برادر از دست بدم لیلان لیلان لیلان برگمت با لیلان همیست من برشکری من برشکری کردم موتورت بشینم سروان بارم زمان بشین چهاش آلم خاطر توی نخواه ما برادرها هستیم به وقتش همه پشتن خاندان کریم بوستان و وزیر وقتی پای بنیان بیاد وسط پشت همه بنیان چیه؟ زیر بار سور نرفتن من دادست تو نیستم خب پس دیسگیز کشی زیر ماله این آج بس راے مَنَم تنہا میمونم میدانم می آوی می می با تو آرامم بیتارسم از وی تنہا چغ خار زخمیت چون آتش در زیر خاکشتا برگرد و بیا دل تنگ دیدم Tšut چون از ما کسو بر دیده اژما